یا ایوه ناس، نان منی دو گوشت گوش چرک یه هفت از کجا بیارن بخورن، گرون جای خود قهتی به درجه یه این روزا گوش نیست چه در سالاره، دوله و وزاره ها گندوم احتکار کردن، مستخدمین دولت برای گرفتن مواجب پس افتادشان در میدان ارگ ازده کرده بودند که جای سوزن انداختن نبود، منتظرین از گل و دوش هم بالا میرفتند و سعی داشتند هرچه زودتر دستشان به صندوق دار و در نهایت به مختصری از حقوق عقب مانده برسد. مجتمعین از واجب الوجود تا هرچه بود و نبود را دشنام میدادند و صدای اعتراضشان از همه سو برفلک بود. شکایت از اوضاع صحبت غالب بود. مواجب ما چار ماه وصول نشده فال دیگه بقال و چقال نسیه نمیدن، زور آوردن فایده نکرده، زاری کردن فایده نکرده، فقط کار سازه. کارت به استخون رسیده تا مکروهی واقع نشده ما رو از اینجا رازی بفرستید بریم. همان از دست دولتیان ستمگر فقان از دست روحانیون تمنکار این دو طبقه فاسد تا کینون نون کلا نمدیار از دهنشون در میارن خون ابناه بشر رو به شیشه میکنن. مردم گرسنن شکم گرسن از قدیم گفتند و ایمون نداره. ملای محتکر و پسرش رو تو تبریز شبونه چند نقابدار کشتند در انبارای غلش رو شکستند. به غیرت مردم تبریز و سزای مکتکرین همینه و لعنت برمکتکر زور نده آجان منم منتظرم فشار نیار برادر استفال جاله دو نفرم زیر دست و پا نفله میشنم عبدالله خان نایب از میان جمعیت راهی به بیرون باز کرد و مواجب وصول شده را در جیب کت گذاشت و جیب را دگمه کرد سوار واگونی اسبی شد و سر گذر صاحب جمع از واگن پایین آمد چند فقر کار داشت که تا قبل از فرا رسیدن موید عروسی با سلطنه باید به انجام میرسند. مقدم بر همه تحییه خانه بود. جایی را که از طریق خریدار مستقلات خانواده ایال سراغ کرده بود، در کوچه مسجد واقع بود، در حوالی بازارچه سوسکی. امارات این کوچه کلن به صاحب جمع تعلق داشت که از سرسپردگان و وفاداران به محمد علی میرزا بود، و تا دم آخر برای مقابله با مجاهدین در آنها سنگر بسته بود و با یاری قشون و عبواب جمعیش به روی مخاسمین تیرو توفنگ در کرد. وقتی که ولی نعمت از سلطنت خل شد او هم بار سفر بست و در رکاب شاه مخلوع عازم دیاری دیگر شد. بر مال و منالش این چند سال خاک نشسته بود و حالا آنچه از این اموال نصیب مفت قران جده بود در معرض فروش بود. نایب عبدالله به این جزئیات وارد نبود، فقط قیمت خانه را مناسب بیدید، گرچه برای پرداخت همین مبلغ هم ناگزیر بود، مقداری از تومانسیانس ارمنی قرض بگیرد که مذاکرات مقدماتیاش انجام شده بود. دلال مقابل در خانه تسبیح میگرداند و باریش خذاب بستش بازی میکرد و انتظار عبدالله خان را میکشید. به محض رویت نایب تسبیح را به دور شهست تابید، و دست بر سینه گذاشت و با سلام و سلوات به استقبال مشتری رفت. دو انبار و طویله خانه بر کوچه بود و دیوار طویله بر اثر صدمات جنگی و قفلت بعدی فروریختگی داشت. دلال از ضرورت و وسعت انبارها زمانی سخن گفت و تعمیرات طویله را ناچیز خلم داد کرد یک قایمه زیر سخف میزنین زنین بقیم کار چهار تا خشت و یه فعله و یه صبتاشون کار. در خانه به هشتی باز میشد و هشتی به حیاتی میرفت که در سمت راستش پنج دری قرار داشت و در سمت چپش اتاق بیرونی دلال گشبری ساده و بی تکلف گیلوی پنج دری را به عبدالله خان نشان داد و گفت اوساکار خواننایه نایب عبدالله بر کف اتاق پاک گوبید و گفت خونه رو خاک ساخته شده لابد ما رو اغرب زیاد داره دلال تسبیح را در کف دو دست مالید چشما را به تعجبی ساختگی گرد کرد و اینجا جانور که اگه خاک رطوبت داشته باشه جانور میاد و گرنم نه به دوازده امام عبدا خلافرز کردن خبتون به پیغمبر اینجا خوشک خشکی و فورا درهای پنجددی را رو به ایوان گشود و اضافه کرد این قسم تارمی مگه تو گیلان و مازندران نظیر داشت. نایب عبدالله دستی بر نردههای چوبی خراتی شده کشید و از پله ها به سمت حیات بیرونی که حوزی مربع در وسط داشت و مبالی مسلس در گوشه پایین رفت. دالان خمیدهی چون نافدان از میان پنجدری و اتاق بیرونی به حیات اندرون راه می بود. دلال عبدالله خان را از دهلیز گذراند و گفت خمه دالون و ملاحظه کنی خاننای چه خد بقایدن. نه حائل نوره، نه یه مو از نوامیز از این طرف قابل رویت آشپزخانه و های اندرونی دور تا دور حیات شده بود و میان حیات اندرونی حوزی چارگوش و چاهی نیمه عمیق بود دلال گفت راهاب اون سمت حیاته، اما قدر این چاهو بدون این خان و دلوی که کنار چاه بود پایین انداخت و نیم پر بالا کشید. آبش اشک عشقی چشم میل کنی نایب سری به نفع و تشکر تکند دلوگت نطلبی دست مراد میل کنی نایب سر کنار دلف گذاشت و جرعی از آب خنک چاه نوشید و سبیل ها را با پشت دست خوش کرد دو اتاق از چهار اتاق اصلی اندرونی هم صاحب ایوان بود با همان تارمی های خراتی شده دلال در آب دست را باز کرد و بیان که توضیح بدهد کناری ایستاد تا نایب نگاهی باندی اندازد. اینجا از مستراح بیرونی بزرگتر بود و دو به تازهی که به دیوارش مالیده بودند روشنش کرده بود. دلال به اتاق طرف مقابل اشاره کرد و گفت مناسب خدم است از طریق پنجدری به بیرونی را داره و بعد وارد آشپسخانه شد. آشپسخانه وسیعی بود با پنج اجاغ هیزومی و زغالدانی که عرض آن را پوشانده بود و سکویی که برای گذاشتن دیگ و دیگ بر تعبیه شده بود. هاونی سنگی و دستاسی سنگین که در کنار دیوار آشپزخانه بود، مثل نردبام و بامگلانی که در گوشه انبارها بود، طبق رسم زمان سر خانه میآمد و به صاحبخانه جدید تعلق داشت. دلال دستی را که تسبیح میگرداند بر پشت کمر گذاشت و با دست دیگر ریش هنابسته را نوازش کرد و با لبخند گفت اهل منزل سر اجاغ دعواشون نمیگیره ماشالله برای حرم سرا اینجا جا هست نایب عبدالله از گوشی چشم نگاهی به دلال کرد و گفت اهل منزل یه نفره و این خونم قابل قدومشو نداره اما گلوی خود عبدالله خان پیش خانه گیر کرده بود خانه نجیب و دنج و خوشغواره بود دلال با سرفه سینه را صاف کرد و دستش به شمارش دانههای تسبیح افتاد و گفت خانه از این ایانیتر خانایه به چهارده اون اینجا رو صابجم با اون همه کر و فر برای عروسی پسرش ساخته بود که خوب غذا و خطر نزاشت و از آنجا که نمیدانست مشتری از مستبدین است یا مجاهدین به مالک قبلی منزل بیش از این نپرداخت و مطلب دیگری به این حرف کلی نیفزود و به برشمردن مزایای خانه افتاد کامل رو به قبله است آفتاب رو تمام چهار حتی زیرزمینش نم نداره عرض کردم بفرمایید ملاحظه کنید و, کنی. و رو به زیرزمین که زیر پنج دری بود به راه افتاد زیرزمین به مساحت کل پنج دری بود و رفهای دیواری زخامت جرزهایش را نشانی داد با اینکه بن در هم درختی چون تنابی تابیده از لا راه پله بیرون زده بود دیواره محل رطوبت نداشت و به نظر مستحکم آمد نایب هزار پای زرد درشتی را زیر پا کرد و دستی به ریشه گیاه زد و گفت این چه دلال تظاهر کرد که هزار پا را ندیده است و به طرف روشنای دهنه پلکان به حرکت درآمد و گفت از درخت تود خان نایب عمرش صد سال گذشته و یه هنوز میگه میده بار بار شفتن گرین باغ ببینین نمیشه ازش دل کند نمیشه تشفیادید باغ بعد از یک رشته شمشاد کوتاه که در ته حیات اندرونی رسته بود شروع میشد و حد فاصل باغیش با اندرون همان درخت توت سفید بود و یک درخت پربار خورمالو. درخت توت حقیقتا تماشایی بود تنش به بغل نمی آمد و هر شاخه اش نهالی بود بر مدور میان باغ سایه این دو درخت و تصویر بارونه درختان انجیر کنار دیوار و زبان گنجش که انتهای باغ منعکس بود در میان هر چهار باغچه چهار گوشه آب نما یک درخت انار به گل نشسته بود رنگ قرمز زعفرانی گلها به چرم سرخی میمانست که بر آن براده زر پاشیده باشند دیگر بوته ها به رهنگی خزان داشت جز دکو کوکب سفید و اون نابی که در آغاز پاییز تراوت بهاران را به باغ آورده بود. نفس در سینه نایب عبدالله غبص شد. این خانه قصر و بارگاه نداشت اما آشیانه عشق بود. دلال داشت می گفت کل قواره زمین 1300 و سی به همین قرآن مفت بود. غیر هشتی و دری در مجموع 6 تا است همون برای مکم و علی ولی خال بهش نیست ملازبه فرمان خان ناید مشرف نداره حقا حقا حقا به جدن فاطمی زهرا من خودم خواهونشم مرد مرشانی خیش ششدون به امام زبون که پولش اشتره مدره ملک نمیشه. در این نیام نابسامان که توی سر سگ میزدی فروشنده میریخت و خریدار ستاره سوهی بود مشتری را باید به هر دو دست چسبید اما دلال ناسواب برای مجاب کردن نایب عبدالله قسم راست و دروغ قرآن و رسول میخورد، عبدالله خان از این خانه دل نمیگند کند. قولنامه را در همانجا در میان تسبیح انداختن و ریش و چرب زبانی کردن دلال امضا کرد. براتها را داد و کلیتها را تحویل گرفت، سربازی را به نظافت خانه گماش و خود پی دیگر کارهایش ره. حبدالله خان بعد از بازگشت از ورامین، هر ماه جزئی پولی توسط خواهر ناتنیش برای فرزند حواله داده بود تا مخارج شیر و قنداقش تعمین شود. اما نایب پسرش را هنوز ندیده بود و قصد دیدار از او را هم تا خانه و زندگیش رو به راه نشده بود نداشت. دیدار دل بستگی می آورد و دل بستگی دو دلی و دل بستگی و دو دلی بر ازم مرد خلال وارد میسازد سازد و را سست می کند. پس عاقلانه این بود که بچه را فعلا به حال خود بگذارد تا بعد از اولین وضع حملشم سلطنه پسر را هم به منزل راه دهد. قبل از مادر شدن انتظار مادری از زن نمی دواند. از بسات جلوی بازار کفاشان یک جفت چسک برای فرزند خرید و از بازار زرگران یک نظر قربانی و این هر دو را با یک دومان بچه رایج توسط چاپار به نشانی خواهرش به فرستاد. <تصفيق> کار مهم دیگری که نایب عبدالله مد نظر داشت رفتن به جستجوی قبر میرزا محسن خان بود. قبل از آزم شدن به جبه جنگ به امیر خان قول مردانه داده بود که نگذارد خون محسن خان بر زمین بماند. مدتی بود با شرم ساری به این نتیجه رسیده بود که پی بردن به چند و چون مرگ محسن خان از جمله محالات است قاتل قتل های ایان هم در این ایام معلوم نبود چه رسد به قتل های مشکوک جنایت امروزی فردا فراموش می شد. چه رسد به جنایت پارینه خون ریخته در میان معبر عام و در روز روشن شاهدی نداشت چه به خون ریخت در وسط بر بیابان و در دل شهر نایب عبدالله نه اهل رفتن به زیارت اهل قبور بود نه پایبند به مراسم و مناسک مذهبی اصولا از مسجد و بوقه و امامزاده و سقاخانه رو گردان و گریزان بود در اماکن مقدسه بوی غم به مشامش می و در کار مذهبیون ریا و تدلیسی می دید که با مزاج از سازگار نبود پس نه به نیت خاندن فاتحهی به جستجوی گور محسن خان می رفت، نه به امید یافتن رد پای مجرمی میرفت رفت تا استخانهای محسن خان را در آرامگاه نهایش بخواباند و این را به نیابت از طرف شمسلطنه و در جواب به امیرخان بیشتر وظیفه خود می دانست تا عباس خان یا و سلطنه. نایب عبدالله به سراح اسماعیل بزاز رفت تا با قطار آزمه شاه عبدالعزیم می این راه را به کرات و دفعات رفته بود مخصوصاً در زمانی که ملایان سوار شدنش را تحریم می کردند و به پیش خویی می گفتند که به دلیل معصیت کار این ماشین ناس با مسافرین کافرش همه در روز جمعی به کام زمین فرو خواهد رفت بازار بستند، بلوا به انداختند و شریعت ها گفتند که خط به راه نیفتد و فقط با گرفتن توحف و و چرب و نرم لب از مخالفت فرو بستند و هر حال به دلیل این آنشوب هم از بست ریل ها انصراف حاصل شد هم لشوش در آزار و عذیت مسافرین جسور شدند باجه بلید فروشی در میان دالان عریضی بود که بین اتاقهای انتظار زنانه و مردانه کشیده شده بود دو طرف دالان طبق داران به فروش دوغ و شربت و گز و نشسته بودند و ماد مرشد هم چون همیشه در جمع نران به معره گیری مشغول بود. مشهد بلغیس مثل باجه بلیت و تبق فروشان و دودکش برنجی قطار و نیمکتهای چوبی و خدمگار از اجزا ثابت ماشین دودی بود و همه زائرین و مسافرین این راه او را می شناختند و با دهن گرم و صورت زیبا و چشمان نابینایش آشنا بودند با اینکه نه جمعه بود نه روز زیارت نه شب قتل و نه عیدی از اعیاد ایستگاه شلوغ بود نایب ابدالله بلیتی از باجه خرید و پاکتی تخمه از طبقداری و به انتظار ماشین دودی با بقیه منتظرین پشت در ایستاد. به آمدن قطار چیزی نمانده بود چون بلغیس که تنین صدایش در اتاق و دالان میپیچید به مرحله جمعآوری صدقه رسیده بود. یا علی قسمت میدم به ناله های دل زهرا به جگر لخت لخته حسن به خون گلوی حسین به اسمت همسرت فاطمه به قریبی دخترت زینب به دست قلم شده قمر بنی هاشم که حاجت این جمع و کو. کن چرا منو بده که به حق تن خونین شهدای کربلا زیر دست نشی. مرتضا علی عوضتو بده امام هشتم دستگیرت باشه و قضا بلا ازت دور بده چراقمای الهی باب هوایش دردتو دوا کنه الهی شش گوشه قبر علی اکبرو بغل بگیری دستت به ذریع امام رضا برسه الهی بار سفر مکه ببندی چراق بده در راه حق به من لچک به سر آجز کور الهی تن بیمار نشی کیسه بیمار نشی خیر از عمرت ببینی با عزت بزرگی محتاج نو دولت نشی خجالت اهل عیال نکشی حالا دستتو بگیر جلو صورتت بگو یا مرتضی بگو یا موسی حالا به دعای من بگو آمین حالا سلوات خطب کن هو هو حق حق مولا مولا علی علی حسین حسین نفیر سوت ماشین دودی بلند شد و مسافران با عربدی واز کن, واز کن به طرف درهای بسته هجوم بردن و صدای فحش و فریاد با هو و حق مولا و علی و حسین در هم پیشید در یک نفس ماشین دودی به امامزاده جلبندی تبدیل شد که از در و دیوار و سقف و بدنش آدم بود. آنهایی که بلیت نخریده بودند خود را از دید محتصب قطار پنهان می کردند تا در فرصت مناسب داخل جمع مسافرین شوند. زنان تنه می و نفرین می کردند و به واگن زنانه سوار می شدند. جوان بر بام قطار جسته بودند. چشم نهایب عبدالله به مامور نظمیه بود که داشت از قطار دور میشد. شود. دست ای کجا می, می اینجا چوب بلونه زن بوره. پسته ول کنی که اون سرش سراس مامور معمور رو توند کرد و گفت خضای حاجت از میام می آم. با خرق تنگین نشست و زیر لب که خزای حاجت. امید به اینکه در طول سفر آرامشی داشته باشد نداشت صدای گفتگوی نخراشیدهٔ لات و لوتی واگن را انباشته بود و چکچک چک تخم شکستن زنها از قسمت زنانه بلند بود نایب طی راه با کسی حرف نزد در تمام مسیر دست به پاکت عاجیلش نبود. شب را باید به طریقی می میکرد اگر گاری پستی در شاه گیر بیاورد یکسر تا قم میرود و شب را در همان کاروانسرایی سر میکند که محسن خان آخرین شبش را گذرانده است اگر وسیله پیدا شود اگر کاروانسرا را بیاورد. در انتظار دلیجان به قهوهخانه رفت در قهوهخانه میان دود چپق و غلیان نقالی در لباس دربیشان، به راست و چپ قدم میزد و چوب دستیش را بالا و پایی می برد و کلمات چون آبشار از دهنش ترازیر میشد. در حین گفتن صدا را پست و بلند می کرد و و صورت را با داستان هم داستان میساخت زاخد. چشم نرگس فتان، ابروخ خمچوگان، مجگان تیر خدنگ، دماغ، خط قلم، لب، لعل و گردن ستون آ، سورت، خرشیر تابان، دندان مروارید صدف، قامت سر به روان، زورت پله پله و جد جد، مثل شمش مزاب از فرق سر تا دم پاریخته، نقال در اینجا را از کولش برداشت و چون موی سنمی که توصیح میکرد به طلب فیز بر زمین گستهد. نایب عبدالله به جوانک خوشبر و رو و خوشصدایی که دستورات مشتریان را به نیمه آواز به قهوهچی منتقل میکرد چای و چاشتی سفارش داد و سکهی در دامن نقال اندار نقال بعد از دعا در حق حاضران دنباله نقد را گرفت وقتی چشم امیر رومی به عکس ملکی فرخ دختر پادشاه فرنگ گفتاد اوش oh, از سرش بگی نقش زمین بعد از دو شبان روز که دل آور به خود اومد دل باخته بود نگ یک دل سد دل و پرده نقاشی دیوار قهوه خانه همه سرها گرد و تمام رخ بر تنها قرار داشت از نعشه خفته بر زمین گرفته تا صلح شوره ایستاده در میدان هر شقه ابن زیاد اندکی از نیم صورت پندر بود و چشمان در جدایی از هم خم به ابرو نیاورده خولی بی عرق در دیگ جوشان نشسته بود و صاحب قهوخانه با خنجری جونزلفگار رو به مشتریان و بالای سر شمر ایستاده بود وقتی نقال به داستان شیرویه و سیمین ازار رسید نایب عبدالله از یافتن دلیجان سفری ن بود به ناچار شب را در قهوخانه بی‌دوته کرد و روز بعد با اسب چاپاری رو به جاده ساوه برآمد منزل بعدی قم بود که نایب فقط برای تعویض اسب در چاپارخانه توقف می کرد. بخاری چاپارخانه روشن بود و به جای حرارت دود و دوده در هوا پرش می کرد. همراه دیگر مسافران تاختن مشکل بود. نه همه اسب ها توان یکسان داشت، نه همه سواران امکانات برابر. عبدالله خان گاه چنان میراند که رقیب از اینان نمی‌شناخت. و گاه ناگزیر افسار میکشید و به سوی دیگران باز می‌گشت و به این گروه پراکنده کند رو نهید میزد و زیر لب میگفت انگار قشم اشکر خورده در راه تخت روان و کجاوه و پالکی و کالسگه دیوانی در حال آمد و شد بود باد تندی میوزید و قبار را به هوا میبود بالاخره نایب عبدالله به کاروانسرایی رسید که تصور می آخرین خانه میرزا محسن خان بوده است. در صحن کاروانسرای یک قطار شطر به نشخار یله بود و کاروانی از استر و قاطر داشت بار می کاروانسرادار حاکم پیشین سابه را به چشم ندیده بود و از حادثی سال گذشته بیخبر بود و در مقابل پافشاری نایب عبدالله با کلافگی گفت سقف بالاخونه خونه ما حالا دو سال خوابیده از برف اون ساله و مسافر به اونجا راه نداره میگی خیر خودت برو ببین تو این راه باز کاربون سرادار هست چرا امیون ماسخور مرکش است ویدی آخه یه امشب سرم شلقه نایب عبدالله نشانه نزدیکترین آبادی را از او خواست کاربون سرادار گفت راهی نیست از اینجا به جهفر آباد نوبران خرقان جادی برو میرسی. از بالا محل و پایین ملو سراد شست و چارده پارچه آبادی عبدالله خان باز به راه افتاد و این بار تنها و سوار بر اسبی که از کاروان سالار کرایه کرده بود در راه برخلاف گفته کاروان سرادار آب و آبادانی وجود نداشت فقط بر و برهوت بود و گرد و خاک. در اولین قریهی که شامل چند خانه گلی و شبکی در هم از کوره راه قیقاج بود از مرکب پیاده شد نومید از زنی دهاتی که دستی نان پنجکش بر سرش بود و کودک شیرخاری را بر پشت حمل می کرد و یک سطل شیر در دست داشت سراغ گورستان محل را گرفت زن سطل شیر را زمین گذاشت و با دست تپه کوتاهی را به نایب نشان داد و پرسید اومدی دنبال قربتی؟ عبدالله خان که گویی خبر خوش شنیده است از هم گفت و گفت ها. خان حاکم مز محسن خان نمی دونم آبا اینقدر که پارسالا بعد خرمن یکی که دیمانی است قربتی اینجا تو قبرستون چاله کی آوردش؟ که خاکش کرد؟ کی آورد خدا میدونه. دونه کد خدا چالش کرد آخر. حالا کجاست کد خدا؟ او کد خودم کد خدا اون روش دارد شما؟ امید کس به اطلاعی بیش از این نبود. منحازان نایب عبدالله سوال کرد. کسی دیگه تو ده هست که خبر از قربتی به من بده؟ کسی تو ده نیست آقا جان. آب اینجا شوره. زراعتش به ما در خانوار نون نمی رسون. میرن بالا محله با خوش می شینی. قربتی خورس نخونده چال شد. کسی که بر سرش نبود خیلی کرد خدا. نایب عبدالله برسید قبرش کدومه؟ از اون اونجاست؟ پای سای خوش. و سطلش را برداشت و راه افتاد. عبدالله خان پشت سر زن صدا را بلند کرد و پرسید کسی رو داری باجی مقبره رو آب و جارو کنه؟ زن نیمه به طرف نایب بگشت و گفت آب و جارو برش چه؟ اینجا باد هست بارون هست خوبه نیست؟ و خندهکنان به راهش ادامه داد. در آغاز سراشی به طرف مقابل تپه یک تکترخت ناروان چتر گسترده بود، و در پناهش گوری بود دور از دیگر قبور که سطحش را برکاگ زرد و قرمز خزانی فرش کرده بود افق در جلو باز بود و در دور دست شیار و برش زمین های کشته دیده میشد که محصولش برداشته شده بود در یک قطعه کوچک یونجزار چند روستایی مشغول درو بودند نوری از صافی پاییز گذشته و سخف خانه ها و بر خشت و خاک انعکاسی طلایی داشت بوی چوب و علف سوخته در هوا بود غبار و خشکی جاده به این چشمنداز ره نبرده بود سکوت و سکون بر این مکان پرفشنده بود در بینهایت نهایت سایه گمبد و مناره مسجد جامع صاوه چون ابری گذرا بر آسمان دیده میشد. عبدالله خان کنار قبر نشست و بر درخت ناروند زد. اگر محسن خان در این خاک است، بگذار بماند، به دست باد و به امان باران، و به دور از معزن و در پناه سای خوش، آرامگاهی اگر هست، همین است.